خدا الان دارم ضبط می‌کنم خب بله بفرمایید بخون ا عقب ا فعل ابتدا که مفرد مذکر غائب از الف الفعل الماضي کاملا درست برای مؤنث اگه تا اخرش اضافه میکنیم میشه بدعت میشه مفرد مايه فعل ماضی خلاص حالا اگر بخوای بیاریم برای مفردش میشه بدعته بله. برای مؤنثش میشه بدعته و متکلم که هم برای مذکر و هم برای مؤنث یکسان استفاده میشه میشه بدعتو کاملا درسته کاملا درسته مزارش می‌کنیم. بده برای مفرد مذکره. بله. و معنیشش میشه تبدعو او. قابل اندروست؟ قب یعنی چی؟ ما معنای بده یعنی شروع کرد. خب میتونید الان بدعه داخل جمله بسازي بزارم داخل جمله. برای غائب مفرد مذکر. بده ای. بعد بدء ريازته ريازته ريازته تو مفعولن اهی اند و به اندو راست لیون بدء ريازته تو مفعولن بهی اب خب چند حال چند حاله عرب داریم در زبان عربی حالته عرب یا حالته راف یا حالته نسب یا حالته جار اندو راست یعنی چه حالت رفع، حالت نصب؟ حاله یعنی تو جمله ممکنه زمه بگیره یا تنوین زم بسته به این حالا چون چه نقشی داشته باشه تو اون جمله که یا معرفه و نکرش اگر که حالت نصب بگیره یعنی یا فتحه یا تنوین فتح بلند و اگر که حالت جر باشه یعنی یا کسره یا تنوین کسر عملن درسته خب الان برای من جملات بسازی در حالت طرف در حالت نصف، در حالت جر در حالت رفت باید یا فائل باشه دلوقتي. یا مب حالت رفت بگیره مثل مثلا محمدون ذهب الى السوق محمد تنبینه. ايه اسم که تنوین زم گرفت چون نکره هست تنوین زم اگر می گفتیم ال محمدو تنوین نمی گرفت به خاطر الف که معرفه میشه فقط زمه می گرفت کاملا درسته خیلی خیلی افتخار میکنه خیلی عالی الان برای اسم برای اسم مثلا میگیم فتح ا ان فتحت فتحت فاطمه دربة, دربه فتحت اتعرف فاطمه الدربه دربة دربة دربة دربة دربة دربة يعني فتحت الطريقه بلي بله فاطمتون دوباره اینجا فائله و مفعولون بهش که اثر فعل رو اون هست اون بلد. درب هست و گرفته خاملا درسته. درسته درب به زبان عربی به زبان ملت ما میشه جاده دربه ولی درب به فت... زبان ملت ما میشه بابون آه. درست, درست, درست گفتی یعنی فتحت فاطمتون الدربه completely درسته. یه از لحاظ معنا زبان عربی چه از لحاظ دستوره زبان عربی. یعنی فتح فاطمیتون ادربه، فتح طریقه. completely درست completely درست. تاجر، علی تاجر. یکی از عادات جر استفاده شده باشه اه. که بتو، که اگر حالا معرفه باشه که فقط کسره میگیره اگر نکرده تنوین کسر میگیره زهبه علیون الاسوق الاسوق سوق به خاطر اینکه بعد از عدات جر اومده باید یا کسره بگیری یا تنوین کسر اما چون اینجا الف و لام داره معرف است فقط کسره بشتدیم اگر الف و لام شد مش هي الاس الاس سوقين. ألفين. بيت خيلى خيلى خيلى افتخارني كله. أفهمي. أفهمي بدأ. ااا خلنا ناين ألف و. بعد بدأ. بطاقة الوصول. يعني الشيء بطاقة الوصولي. یعنی کارت ورود ورود مسافران خارج بلی. که میخوان توار کارتی که میگیرن من درسته بله بواب بوابتو. میشه دروازه بلی. که اسم قد بعد اگر بخوایم جمعش جمع ببندیم شو... جمع بواباتون سفریم بوابات و من بواباتون بله اسم جام. کاملا درسته. لفظ بعدی تقدمه. تقدم یعنی جلو رفت. پیش در حالت اصطلاحی پیش هم میشه پیش رفت. کاملا درسته. فعل مازی مپرد مذکر غائب. خب اگر, اگر برای اگر برای مخاطب چه میشه؟ استفاده کنیم؟ میشه تقدمت. تقدمت. مزارش میشه تقدم و مف... و تتقدم مصارع مش يتقدمو برای مذکر تقد... و تتقدمو برای مؤنث کاملا درسته. افرا مصارع مش تقد تقدم ت برای مذکر تقدم برای مؤنث و تم تو متکلم هم مذکر و هم مؤنث کاملا درسته. و درس افرا خیلی كيف تخيل يكونه يا عزيزه اي تخيلش خلو بلي بعدي بعدي توجه ها، توجه يعني یعنی نگاه کرد توجه کرد به سوی ممكنه فقط اه م... تو كتاب ترجمه کرده به سوی فلان حرکت کرد نقطه چين گذاشته لا ثقاق فاهمیدین که ممکنه فقط یه نگاه کرده باشه ولی حرکتی انجام نداده باشه کاملا درسته. درسته بله کاملا درسته بله کلمه اوفلاتان که میشه دو تا اتوبوس اسم مصنعه برای حافلت که میشه حفلتون که میشه اتوبوس یک بعد اه... اه... کلیدا اگه... دمو... متنا چی میشه الان برای مذکر و برای مؤنث اسم متناسبه کنین اگر مثلا گفت، گفتم گفتم مثلا معلمون معلمون معلمون الف <تصفح> و نون بهش اضافه اگر تو حالت رفت باشه الف و نون اضافه میشه میشه معلمان اگر اگر تو حالتی باشه که اه، کسر کسر یا نصب بخواد حالت نصب و حالت جر بخواد باشه با یه عنون مسنناش میسازیم میشه معلمینه حالا اگر که بخوایم به صورت معنص به کار ببریم همون لفظ و یه تابش اضافه می‌کنیم که ممکنه مثلا بچسب مثل معلمتون که میشه معلمتانه معلمتا اینه ممکنی باشه که تشت جدا باشه مثل مثلا بغرت درست بغ... آره تیت جداست چسبیده نیست به لفظ کاملا درسته اون لده این ها نشونه ای داریم برای نشونه تقنیت یا مؤنطه داریم الان چیه تا مربوطه اون... فعنی... مربوطتون و تا اون مربوطتون منفصلتون ولی جفتشون بره. اصلشون تاون اون ممدودتون بره. تا اون ممدودتون اصل کاملا درست. علمدوست. کلامی بله حدیثون حدیثون, حدیثون میشه جدید نو. No. بله دقیقاً و کل اسم اسم مفرد دقیقاً و اینکه الان مصنغم بله بفرمایید اگر که بخوایم مصننش بگیم حدیثان درسته یا حدیث درسته اگر مؤنثش بخوایم بکنیم حدیثات حدیثات اینه کاملا درسته خیلی خیلی خیلی افتخار میکنم خواهر عزیز کاملا درسته علمدار لفظ ختمه علا ختمه خود فعل مز... مفرد مزکر قائب ختمه هست علی. ختمه الان یعنی بر یه چیز محر زد زدن میشه حقیقا اگر برای مؤنث بخوایم به کار ببریم که آخرش میشه ختمت حالا و مزارش میشه ختمت ختمت و متقابلم ختم تو مزارشم یختمو و تختمو برای معنیس معنیس کاملا درسته. خیلی خیلی ممنونم. کن الان من, خی... من خوشحال شدم خدا خداحافظی تو زبان عربی خوب داری مصلحتش. الان و حرفتون کاملا کاملا درست. خیلی خیلی خیلی افتخار میکنم. خیلی ممنونم خواهش عزیز. خیلی ممنون. تن